سرم خوشست و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله می جویم. ابوس زهد به وجه خمار ننشیند مرید خرقه دردی کشان خوشخویم شدم فسانه به سرگشتگی و عبروی دوست کشیل در خم چوگان خیش چون گویم گرم نپیر مغان در به روی بکشاید کدام در بزنم چار از کجا جویم مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی چونان که پرورشم میدهند میرویم تو خانقاه و خرابات در میان مبین خدا گواه که هر جا که هست با اویم قبار راه طلب بهروزی است قلام دولت آن خاک انبرین بویم ز شوق نرگس مست بلند بالایی چلاله با قده افتاده بر لب جویم بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک قبار زرگ به فیض قده فروشویم